ایران دهج بازنگری در تاریخ قلم رو بمیانیم که این تاریخ تحمیل شد و در مدارس و دانشگاه هایی ما تدریس میشه رو پرداختیم رسیدیم به ایوبی که باعث شده چنین تاریخی ما تحمیل بشه. در این بازنگری ها قرازورزی وجود داشته مثلا فرض بفرمایید که سانسکریت قدیمی تر از یونانی باشه واجه ها یه مقدار باید روشون دقت کرد دیگه ما تاکید کردیم رو واجه میتولوژی میخواییم که اینا یه مقدار میشه روشون بیشتر دقت کرد بانوان و یاد یگان آفریدگار هستی با عرض سلام و ادب و احترام و درود خدمت شنوندگان گرامی در قسمت ششم برنامه ایران ویج. در خدمت شما هستیم مباحث پنج برنامه گذشته را حتما دنبال کردید ما در ادامه قسمت قبلی به امکاناتی که داریم برای بازبینی، بازشناسی و بازخوانی تاریخ میانی تاریخ قلمروی میانی خواهیم پرداخت همونطور که در قسمت های گذشته ما عرض کردیم آماده شنیدن نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما بزرگواران هستیم از طریق ایمیل info@sedayeomid.com و همچنین از طریق سامانه پیامکی 3044-68 که میتوانید پیامها انتقادات و پیشنهادات خودتون رو برای تمام برنامه های صدای امید و از جمله این برنامه خدمت دستن در کاران این صدای امید و همچنین برنامه بفرستید و ما خیلی صمیمانه منتظر این پیامها و انتقالات شما هستیم. مباحث رو تا به یه جایی رسوندیم که اساسا ما می‌خوایم یک نقد جدی و نقد اساسی و متدولوژیک بر تاریخی که نوشته شده برای ایران داشته باشیم. و همچنین دنبال این هستیم که این تاریخ دوباره بازخانی بشه و بر اساس امکاناتی که وجود داره روی اون کار اساسی و تاریخ‌شناسانش بشه ما البته قبل از اینکه بخوایم بگیم چگونه می‌خواد مسئله صورت بگیره و قبل از اینکه بریم سراغ کاوش‌ناسانین برنامه یه چند دقیقه خود بنده یه توضیحاتی بدم که تاریخ هم خب جزئی از علوم انسانی هست روش شناسی و نوع روش تحقیق در تاریخ هم وابسته به روش روش‌های تحقیقی است که در علوم دیگه ما داریم ولی یک فرق اساسی بین علم تاریخ با بقیه علوم انسانی دیگه وجود داره که حساسیت این علم حساسیت موضوع رو دوچندان می‌کنه خب تاریخ برخلاف جامعه شناسی برخلاف علوم سیاسی و برخلاف علم روابط بین و ملل که بر روی زمان حال جاری است و ما میتونیم بر اساس روش‌های پوزیتیویستی امکان سنجی بکنیم آزمون خطا بکنیم و بر اساس صدق و کذب قضایه علمی نظریه فرضیه بدیم و برای اثبات اون فرضیه وارد یک فرایند میتودولوژیک بشیم در مورد تاریخ این مسئله تا حدودی سخت هستش تاریخ یه چیزی که گذشته شده یعنی است که زمان بر اون گذشته لذا ما مثل جامعه شناسی جامعه آماری نداریم که بخوایم مثلا درصد معتادین یک جامعه رو بسنجیم یا مثلا درصد اعتماد یک جامعه به یک حکومت رو بسنجیم در علم تاریخ روش شناسی و روش تحقیق کاملا متفاوت هست و لذا در این علم ما به انباشت بیش از دیگر علوم نیاز داریم شاید در علوم سیاسی و یا در جامعه شناسی ما به سری امکانات خیلی اندک میتونیم کارهایی رو انجام بدیم مثل مثلا آمایش سرزمینی مثل امکان درصد اعتماد مردم نسبت به هم دیگه که حالا اینجا در داخل پرانتز یک مسئله رو از کنم که واقعا بحث خطرناکی هم شده سال 1053 یک تحقیق علمی بسیار جامعه توسط دکتر عباس فلاحتی انجام شد در مورد میزان اعتماد جامعه‌ای یعنی مردم به یکدیگر که یک درصد نزدیک 54 درصد به دست اومد یعنی مردم به همدیگه اعتماد دارند. این تحقیق دقیقا با همون پرسش نامه دقیقا با همون متد در سال۱۸۳، یعنی 30 سال بعد از اون تکرار شد و با نهایت تعاسف 20 درصد این اعتماد پایین اومده یعنی الان میزان اعتماد مردم به یکدیگر یک چیزی نزدیک ۳ و ۳ درصد هستش. این مثال رو عرض کردم که مسائلی که در دیگر شاخه‌های علوم انسانی مثلا حالا اقتصاد رو بگیم یا مثلا روانشناسی رو بگیم یا علوم تربیتی رو بگیم ما مواد خام موجودمون زیاد هست خیلی راحت میتونیم تحقیق رو انجام بدیم ولی در مورد تاریخ ما چنین امکانی رو نداریم در قسمت گذشته کارشناسان و برنامه لطف فرمودن در مورد امکاناتی که ما داریم و میتونیم از اون استفاده بکنیم برای بازشناسی تاریخ قلمرو میانی ما از اسطوره‌ها صحبت کردیم از مطنه های فارسی صحبت کردیم از اوستا خدای نامه ها که ها به نام با نام الهی نامه ها در سنت ایرانی اسلامی تکرار شد از اونها صحبت کردیم و به اضافه علوم دیگهی که باید کمک بشه به عنوان کمک کار بیاریم برای این مطالعه مثل علمی مثل زبانشناسی علومی مثل زبانشناسی استورشناسی حتی هواشناسی جغرافیا و از همه مهمتر علم ژنتیک که بتونیم انباشتی داشته باشیم برای گفتن صحبتهای خودمون این مسئله بسیار حساس هستش ما با یک متغیر و با یک منبع و با یک وجه از علم نمیتونیم تاریخ رو مطالعه بکنیم و حرفی برای گفتن نمیتونیم داشته باشیم لذا باید از وجوه مختلف از زاویه های مختلف باید نگاه بکنیم و تا اینکه بتونیم این تاریخ رو بازشناسی بکنیم و برای مردم نشون بدیم که این تاریخی که نوشته شده ایراد داره و بر اساس یک سری متاع استعماری ساخته و پرداخته شده بر اساس یک سری فرضیه نوشته شده که هیچ وقت اثبات نشده این قسمت از برنامه سه تا کارشناس ما در خدمتشون هستیم در هفته گذشته ما تونستیم تمام چهار تا کارشناس رو در اختیار داشته باشیم ولی امروز جناب آقای فیروزی در خدمتشون نیستیم ان در قسمت های آینده در خدمتشون باشیم جناب آقای ایرانمر هستند سرکار خانم دکتر احسانی هستن و جناب آقای کریمی در برنامه گزارشی یعنی قسمت پنجم فرصت نرسید به جناب کریمی تا خودشون رو ارائه بدن جناب آقای کریمی در خدمت شما هستیم به عنوانی کاشناسی زبانشناسی خب در مورد زبانشناسی در ایران چقدر کار شده برایی که ما بتونیم استفاده کنیم از اون رفرنس ها برای بازشناسی تاریخ آیا اساسا کاری شده در حد مقاله، کتاب و کارهایی که بشه حساب کرد و حالا درست ما میگیم که نهادهای اکادمیک که بین المللی خب معلومه که به نفع تاریخ ما کار نمیکنند. آیا کار اکادمیک که زبانشناسانی درست و خیلی قرص و محکمی انجام شده که ما بتونیم تو نهادهای اکادمیک که بین المللی ارائه بدیم به عنوان سند برای اثبات ادعاها و در وقت صحبتهای خودمون در مورد تاریخ خلم رو میانی یا نه فرما شد شماره میشنم به نام خدا با دورد فرمان خدمت شمندگان گرامی فر شما باید از کنم که بله در زمانشاسی ما بسیار دستمون پره یعنی کارای بسیار ارزنده ای شده و به از خلاف دانش باستان شناسی کارهای بسیار بزرگی انجام شده که ما میتونون هر کش به ما یاری بسیاری برسونه تو دادن مقالب دانشگاه معتبر بله بنده تو این هفته کوشش که هم کسی از رفرس ها خدمت شوندگان گرایی معرفی کنم چون میخوایم که از این بعد بر پایه این اصول پیش بریم یعنی حرفم از خودم نیست یعنی هر چی داریم میگیم اینا همه نوشته شده ثبت شده و چاپ شده خب طبیعتا زبان شناسی هم تحت تاثیر این تیغ بران داستان کوچ آریایی قرار گرفته ولی خب چون قسمت دانش زبان شناسی ناپذیره. مانه. یه جاهایی داره رد خودشو نشون میده و حتی از دانشمندان هم دارن میگن که این علم زبان داره به ما میگه که ورود آریایی به فرات خیلی کهنتر از این حرفاست یعنی یک نشانه هایی در زبان های مثلا هیتیها در زبان هوریانی ها در زبان اوراردورها در زبان بویژه اکدی من این کلمه بویژه رو میگم ویژه اکدی و سپس زبان سومری بود که تره ولی خب ما بیشتر با اکدی خیلی بیشتر در ارتباط هستیم تا با سومری ولی نشونه در سومری هم حتی دیده شده زبان شناسی یک علمیه که نمیشه به این راحتی این چیزش کرد کرد من نظرم به اینه که ما باید کتابای حتی اون کسایی که مخالف ما هستن، مخالف نظر ما هستن، باید بخونیم. فن. اول اول این اونا چی میگن، بیایم همه داده های کنار هم قرار بدیم. بعد کتابای موافق نظر خودمون هم بخونیم، بعد بتونیم جمع‌بندی کنیم و همه کارمون رو مقاله کنیم. من خیلی تاکید رو دارم روی کلمه مقاله. حالا من یک سری رفرنس آوردم که معرفی کنم. این رف... چلو یک رفرنس تقریبا. این آغاز برای کسی که میخواد زبان کار بکنه. بله. یعنی همینطوری از رو اینترنت و نمیدونم و کامنت گذاشتن اینا به نمیرسیم. جا نمیرسه. بله اصلا یک اتفاقی خیلی بدی هم افتاده. به تازگی در انجمن جامعه شناسی ایران ما یک جلسه‌ای داشتیم. آقای دکتر یوسف اباذری گفت: "حالا یه ذره حالا ایشون تند رفت. گفت که اون این تبلتا و این گوشی‌ها و این کامپیوترام تبلتا رو یه مدت دور بریزیم. اصلاً خودت منابع اصیل، خود کتاب رو بدید بخونید که البته در این حد هم واقعاً حالا یه ذره تند روی ولی واقعا تا حدودی میزان مطالعه رو در ایران پایین آورده و خیلی سر اتی هم شده مطالعات در ایران و خیلی فکر میکنه که مثلا با یه پست مثلا چهار خطی و پنج خطی مثلا یک تایی مفاهیم بزرگ مفاهیم عمیق رو بشه انتقال داد که این واقعاً اشتباه هستش که مفاهیم بالاخره علم و مال این 20 سال اخیر نیست چون گوگل و سرچ و این شبکاهای این مال این 20 سال 15 سال اخیرند در حالی که علم و اندیشمندی و فضیلت و فرزانگی ریشه چند هزار ساله داره ببخشید میانی کلام اومد از این یه تذکری هستش که بالاخره ما باید رعایت بکنیم البته خب من بگم من مخالف اینترنت نیستم میگم کتاب خونده بشی حالا چه به طریقی که بن فیزیکی خیلی داری بکنن چه از طریقه اینترنت ولی کتاب بله من. منبع معتبر موضوع منبع حالا به هر طریقی میخونن مهم نیست حالا من این منبع رو اینجا معرفی میکنم خب ما بعد برای یادگیری زبان زبان شناسی باید بیایم از شروع بکنیم از شمال شرق ترین زبان ها چون اونجا رازهای بسیار زیاد دست نخورده ای هست که متاسفانه خیلی کم بشیروسیگی کردن البته این رفرنسی که هایی که من معرفی میکنم اول یا بودنش بودنشش برتری بر اون یکی نداره یعنی اینکه بگید اون کتابی که اول معرفی کنم برتر از اون آخریه باشه نه هست هم همچین چیزی نیست اولین کتابی که من معرفی میکنم مقدمه زبان زبان سنتی هستش نوشته دکتر حسن رضایی باغبیدی بله. خب ساینس فرید من از این لحاظ روش تاکید دارم چون با اوستایی و فارسی باستان بسیار همانندی داره هم از لحاظ دستور زبان هم از لحاظ گویش خیلی با هم همانند هستند و ما میتونیم از اون یک سری از واژه‌ها خب ما می‌دونیم از منابع ما از بین رفته خب ما میتونیم اگر سنسریت خوب یاد بگیریم کاری که مثلا کار ارزندگی مثلا شازمان جانشود درخشانه کردن ممکنه یه واژه ما مثلا تو اکدی پیدا کنیم ولی خب تو زبان ایرانی پیداش کنیم چون سندش به دست ما نرسیده یا تو سنسریت هنوز مونده باشه. بله این بهمون خیلی یاری میرسونه. خودتون خب میدونیم سنسریت و ایزام سنسریت یه شاخه ای از زبان آریایی هستش. البته ما با کل همه اینا میگیم آریایی ولی خب اون تعریفی که بهش میگن زبان‌های هند و اروپایی به طرف دروغینه ما یه والا اینجا بهش اشارهام میکنیم. برای همین خیلی تاکید دارم که زمان شناسی باید یاد بگیرن باید این کلمه باید من خیلی تاکید میکنم بعد کتاب بعدی بررسی ریشه شناختی فعل های زبان پهلوی نوشته دکتر یدالله منصوری هستش زبان پهلوی من باز اینو تاکید میکنم چون نشونه های خودشو در زبان بومی ما خیلی نشون به جا گذاشته یعنی ما همه جا داریم میبینیمش از آذربایجان بگیریم تا سیستان بروشستان. از خراسان بگید تا بوشهر. هنوز ریشهای خودش داره یعنی بسیار قدرتمند هنوز تو خودش نیه داشته زبان های بومی ریشه های فل،, فل و واجه های پهلوی و حتی فل هم نیه داشته تو بعضی جاها کتاب بعدی فرهنگی ریشه شناختی زبان فارسی نوشته دکتر محمد حسندوس در پنج جلده یک کار بی نذیره. یعنی تازه این کتاب به چاپ رسیده می بگیم بعد از 100 سال نخستین کتاب واجه ای که از الف تا دست ایرانی نوشته شده کتابشون هستش 5 جلد فوق‌العاده هست یعنی تأکید میکنم به تهیه و خوندنش کتاب بعدی کتاب ریشه شناسی زبان پهلوی نوشته سونوال نیبرک هستش که انگلیسی، انگلیسیش امانوال آف پهلوی هستش یعنی کتاب دستی یعنی در به دستی معمولاً در زمان زبان پهلوی ایشون هم مورد ریشیابی کرده خب ما یه واجبی هستش تو آکادمی که ما الان می‌خوام براش مقاله بنویسیم این واجبه بسیار مهمه یعنی نشون میده که مهندسی در میانرودان، رودان به ویژه در اکدی از ایران رفته یعنی خیلی از مسائل اندازگیری خیلی از کاخاشون حتی نام ایرانی داره خب این هنوز تو خود این راز هنوز دو تو خودش تو یکی از واژا تو پهلوی نیه داشته بله. خب اگر ما بخوام اینا مقاله کنیم باید بدونن مردم مثلا این کسی که برنامه‌گوش من اصلا پهلوی یعنی چیزی اون پهلوی چی است؟ کجا هست؟ نوشته‌هاش چیه؟ اینا رو باید همرا بلد باشن سوزبان گزیده اوستایی مت و واژنامه جکسون هستش خب این کتاب در هممششه گفت ده 10 سال پیش نوشته شده کتاب فارسی باستان رونالد کنت هستش ریش شناسی فارسی انگلیسی و دیگر زبان های هنند اروپایی که میگم نظر هم آریاییه و خب این کتاب به این اسم چاپ شده، نوشته های دکتر علی نورایی هست فرهنگ واژه های عوستایی احسان بهرامی به یاری فریتون جنیدی در 6 جلد. خود همین اوستای حداقل حداقل حداقل سه سال کار داره. بعد خدم... شناخت زبان اوستایی. اوستایی. برای همین میگم اصلا تو این برنامه اینترنتی به هیچ جا نمیرسن. بی خودی وقتشون رو دارن تلف می‌کنن. یعنی ده سال هم وقت بذارن اندازه یک کتاب خوندن ارزش نداره. بعد خدمتشون اصلا واژه‌نامه اوستایی بارتولوم هم هستش. من چون این دو رو با هم میگم چون میخوام یک نویسنده ایرانی رو یک نویسنده اروپایی کنار هم بذاریم. می نظراتشون در مورد واژهای اوستایی بدونیم. خب خیلی مهمه که بتونیم که ما از تو اوستا ها ریشه هایی پیدا بکنیم که با ساینسفید برابر باشه بعد چون اگه ما بتونیم با ساینسفید اون رو برابر کنیم اون وقت خیلی رو بر روبرو عکدی وایسیم بگیم خب این واژه واژه وارداتی نیست واژه آریاییه که وارد اکدی شده اگر مثلا نشونه های ما کم باشه میاد میتونم بگم که آقا نه این ممکن از اکدی اومده باشه به این دلیل و به این دلیل وارد زبان مثلا شما شده باشه ولی خب ما اگه با سوت هم بتونیم نشونهایی پیدا بکنیم دیگه دستون خیلی پرتر میشه. یکی دیگه کتاب هستش که واژه‌نامه زنده خردوستا هستش دکتر فیروز قندهاری. توی این کتاب یه سری از واژه‌های هم که مشخص خردوستا هستن که اومده گلچین کرده. باز تو اون کسایی که مثلا نمیدونیم رسند یا مثلا توانای حوصله‌اش ندارند که بخون تمام اوستا رو بخونن. این کتاب من پیشنهاد می‌کنم که حداقل اینو خاطر نظر داشته باشن. کتاب بعدی افعال در زبان فارسی نوشته دکتر یعقوب الله منصوری است. خب فعل ها در زبان فارسی خب ما وقتی میخوایم از سنتوم و کنتوم صحبت کنیم میبینیم تو فارسی هر دو نشونه هست که جانش و جامع‌الدرخشانی هم به اون اشاره کردن. این خیلی به ما یاری میرسونه این کتاب که ثابت کنیم که اصلا جدا کردن سنتوم و کنتوم از ریشه بنیاد نادرسته. بعد کتاب بعدی دیکشنری اتیمولوجی فعل‌های ایرانی نوشته چنگ هستش. خب این کتاب اومده در کنار فعل‌های ایرانی حتی واژه‌های مذهب واژه‌ای ایرانی و فل ایرانی واژه‌ها فعل‌های زمان هیتی هم آورده کار بسیار ارزنده ایه این بسیار به ما یاری می‌رسونه که بگیم که آها یک سری از واجه های آریایی توسط هیتی ها وارد زمان اکدی یا هوریانی شده کتاب که داره بررسی فروردین دکتر شنگیز مولایی است تو این کتاب یک سری از های های هست که لاین حل مونده یعنی ترجمه نشده نتونستن ترجمهش کنند خب اگه کسی مثلا علاقه داشته باشه زمان بذاره ممکنه نشونه هایی از همین که واژه ها رو تو یهو مثلا تو سختی ببینه. خاموش سانسکریت, سانسکریت ببینه. بتونه یاری برسونه که آقا این که لاایت رو بتونن ترجمه کنن. دست خود ایرانی ها. گزارش بعدی فرهنگ توصیفی زمان شناسی تاریخی نوشته مرتاد نقشگوی كهند که این کتاب زبان شناسی تاریخی خب مثلا ما بعد بدونیم مثلا خوشام خان چیه مثلا خوشام سهره کجا مثلا شده ر کجا تهره شده تمام اینا رو باید همه رو بلد باشیم وگرنه نمیتونیم حرفمون رو کرسی بشیم تو دانشگاه های بلون منالی. کتاب بعدی راهنمای زمان باستانی ایران دو جد نوشته استاد بزرگوار و حتما بگم استاد بزرگوار دکتر محسن اول بعد کتاب بعدی که دوایی هستش هاله خود آواشناسی وادشناسی شناسی هستش کتاب وادشناسی شناسی نظریه بهینگی نوشته دکتر محمود بیجانخان ایشون استاد دانشگاه تهران هستن کتاب تو فوق نوشتن خب وادشناسی شناسی و آواشناسی خب یک سری قواعدی داره باید اینا رو یاد بگیرن وگرنه اینا که داریم میگیم تازه برای پیش زمینه است یعنی اینا هنوز وارد تخصصی نشده اینا همه همه این کتاب‌ها تازه فقط برای کسی که می‌خواد آغاز کسی که می‌خواد واج شناسی کار بکنه کتاب بعدی کتاب آواشناسی هستش بررسی علمی گفتار نوشته دکتر گلناز مدرسی قوامی ایشون استاد دانشگاه علام توتبایی هستند. کتاب بعدی دستنامه نامه دستور و زبان داستان های گذیده نامه دکتر زهر زرشناس سقدی و زبان خوتنی رازهای فوقلاده ای داره یعنی شما میبینید حتی پیوستگی بین این دوتا زبان و زبان هیتیا بسیار جالبه یعنی حتی از فارسی واسطان به احتیاطیش نزدیکه. ما میتونیم و جالب اینجا میشه ازش نشونهای دستوری و آوایی زبان آلمانی پیدا کرد. زبان گروه هندجرمنی. یعنی برای همین ما میتونیم بگیم که حتی ادعا بکنیم که هندجرمنی از این شاخه جدا شده. خیلی تأکید میشه برای همین خیلی حتی خود اروپاییان به زبان آلمانی رو زبان سوختی خیلی علاقه دارند. زبان مانوی و سوختی. کتاب درآمدی بر زبان دستور داستان های گزیده واجنامه سرکار خانم دکتر محشید میل هستش بعد کتاب مطالعات سغدی نوشته دکتر بعد با زمان قریب استاد مسلم و بیگمان جهانی در زمان من تکرار میکنم استاد مسلم و بیگمان جهانی در زمان سغدی یعنی در تمام جهان کتابشون ریفرنسه این باز این کتاب مثلا شناخت زبان هیتی ها خیلی به ما یاری می شده که حتی من مقاله نوشتم در زبان یک واجهی بود برای واده پیمایش مایاد در زبان سغدی و زبان ارارتور و زبان هیتی از این طریق ثابت کردیم که این واجه یک واجه آریاییه که از تو کل منطقه حتی تو یونان هم پیش رفته بوده یعنی وسیله اندازگیری بوده وسیله اندازگیری نشون از خیلی حرفا داره که شما ببین قنقم وحشی قوم نبوده هزار سال قبل است که اینا میگن اومده تونسته بود بازار حتی قبلتر از اکادیا به دست بگیره که انقدر از سرقت شما یه نظر از نقش کنید تا هیتی ها زحمت یونان چه می بینید. این عظمت این واجه تونسته پخش بشه برای همین هم اولا خدمتتون عرض کنم از زمان سغدی و بسیار زبان‌های رازگوشویی هستند برای ما کتاب بعدی دو دیکشنری سغدی هستش باز نوشته سرکار دکتر بدرو زمان قری بعد کتاب دیکشنری خوتنی سکایی نوشته پروفسور والتر بیدی ایشون واقعا کتابی که نوشتن بی‌غرض و قرض نوشتن یعنی نمی‌تونیم بگیم همه دانشمن‌های اروپایی بعد خوشبختانه زبان‌شناس از این قضیه خورده مستثناند ولی خب بازشون این ذهنیت هم با همین ذهنیت درس خوندن با همین ذهنیت کتاب نوشتن اومدن ذهنیتشون رو لغو یعنی یه وگرنه خودشون از چیز نبودن خودشون به خاطر استعمار این کار نکردن کتابه دستور زبان پارتی پهلوی اشکانی هستش نوشته حسن رضوی باقبدی این قسمت خیلی به موقع کمک کنه به شناخت دستور زبان تو زمان انگلیسی بعد کتاب ساخت واج... اشتقاقی واژه در زبان فارسی امروز دکتر ایران کرباسی این کتاب چون در مورد اشتقاق صحبت می‌کنه به ما خیلی کمک کنه در مورد شناخت زمان سومری که کی زبان فارسی اشتقاق قتوش حتی ما اشتقاق تو زبان اوسوی هم می‌بینیم مثل تو کلمه مثل در مورد اینکه در یوق صحبت که میکنه. بعد کتاب آشنایی با زمان سغدی داره پروسطا سیمز ویلیامز که اینو با سر ویلیامز نداشت را سیمز ویلیامز هستش بعد کتاب فهرست واژگان ادبیات مانوی در مدهای پارسی میانه و پارتی نوشته مری ویس کسا که میخوان ادیان شناسی بکنن این کتاب حتماً به دردشون میخوره چون از طریقاً واژه شناسیش میتونن مثلا ما خیلی از واجه هستش الان مثلا بدونیم که مثلا نی حرکت به پایین بعد مثلا نیزان یعنی مثلا دانشی که از بالا به پایین بیاد میتونیم بگیم خب این کلمه بعدی تو مانجی اومده یعنی یه جور هم میتونیم زبان شناسی بکنیم هم میتونیم باش ادیان شناسی بکنیم درآمدی برجامش کتاب بعدی درآمدی برجامش شناسی زبان نوشته دکتر یحیی مدرسی بعد کتاب بعدی باز درآمدی بر زبان تاریخی آنتونی آرلاتو ترجمه دکتر یحیی مدرسی خیلی جالبه این کتاب خیلی به درد میخوره ولی هیچ نشون این کتاب مثلا اسمش تاریخیه در مورد جامعه هندوروپایی بیشتر صحبت میکنه البته هم حمزه بانو هستش ولی خب بیشتر هندوروپاییه هیچ نامی از ایران در مورد پیدا نمیشه هیچ نامی تو جدول شما نمیه میونانی یونان برای یونان مثل جزیره بوده یونان هست هیچ اسمی از اوستا چیز نیست مثلا در مورد کلمه صحبت میکنه در مورد یونان میگه در مورد لاتین میگه در مورد سنگسریت میگه ولی هیچ نامی از ایران نمیاد خب این وظیفه ماسکه این کار بکنه بکنن هم بهشون خورده گرفت میتونه نکنه البته میگم این خیلی زیرکانه ای کار کرده ولی خب چون کمکاری از ما بوده ما نذاک کمکاری گردن دیگر آن هم بندازیم ما باید میکردیم که نکردیم متاسفانه کتاب این فرنگ تطبیقی موضوع زبان ها و گویش های ایرانی نوشته دکتر محمد حسن دوسته. این کتاب بسیار کتاب جالبیه شما میتونید ریشه بسیاری از واجه های اکدی، سومری، هیتیایی و در زبان‌های بومی عراق تا بهش هیچ توجه نکرده پیدا کنید. نه جهان هم جه... بله، بومی ایران. بله بله. میتونید مقالات بسیار نویکی تا بهش کس تو جهان ندیده پیدا نکرده باش بنویسید. کتاب بسیار ارزنده یکی زمانش شونزا نوشتن. کتاب برای داشنامه مزیاسنای دکتر جهانگیر اوشیدری هستش که سه پیشنهادات کتاب دادن. بعد کتاب فرمانهای شاهان حخامنشی که نوشته نارمن شارپ هستش راهنمای زبان فارسی باستان دستور زبان گزیده موتون واژنامه، نوشته استاد چنگیز مولایی ایشون الان در تبریز تدریس میکنند از شاگردان شاجغان بحمد سركاراتی هستند بعد کتاب فرهنگ فارسی به پهلوی و پهلوی به فارسی دکتر بهرام فرحوشی که بعد کتاب فرهنگ حضوراش استاد ریدون جنیدی هستش خیلی این کتاب کمک می‌کنه به مورد واجه آرامی واجه ایلامی مثلا ما میگیم اینا نه اد میگیم ایلامی‌ها خزی بودن این کلمه کی میگن آرامی و به ایرانی خدیاتونن یک دروغ بزرگه تمامی تو این توضیح میده بعد کتاب نامه پهلوانی هستش این کتاب در مورد تلفظ واجه پهلوی کار می‌کنه که الان به مثلا تو دانشگاه الان به لهجه مک‌نزی اعتقاد دارن ولی ایشون نه به راسی بعدی خود حال بیشتر دیگه, دیگه زبان شناسی محض میشه میشه شناسی زبان نوشته دکتر یعقوب سمره هستش ایشون که از بزرگترین استادای ایران هستن بعد کتاب آواشناسی زبان فارسی باز نوشته دکتر یعقوب سمره کتاب بعدی کتاب دراماتی بر معنی شناسی دکتر و صفوی ایشون دکتر زبان شناسی هستن و در دانشگاه علامه تدریس میکنن معنی شناسی بس چی مهمه مثلا ما میخوایم ثابت بکنیم که نام فلان فلز در سومری یک واژه آریاییه. معنی شناسی میاد میگه که آقا بشر برای هر چیزی واژه نساخته. یه واژه رو ساخته، اومده تو ذهنش معنی رو ساخته، اینو های تعمیمش داده. مثلا شما واژه پیراهن مثلا به تو انگلیسی از میشه بریدنه. ولی اومده معنی پیراهن به خودش گرفته. یا مثلا شما رنگ فلزات همه به معنی رنگ هستن. مثلا خود این فلز برنج به معنی درخشندگی هستش. معناشناسی خیلی کمک میکنه کسی میخواد تو این زمینه کار کنه، باید حتما اینا رو بخونه. بعد کتابی تو بعدی دوره بر معنی شناسی هستش، باز آقای دکتر کوروش صفوی، کتاب بعدی که آخرین کتاب هست که رادشناسی هست، دو جلد، آقای دکتر دبیر مقدم. رادشناسی به ما کمک می‌کنه دست، یادگیری دستور زبان، یکی بدونیم که چرا ما میگه فعلای آری... زبان آریایی، فعل آخر میاد مثلا همیشه. اگر در انگلیسی مثلا اومد اول، پس چه تغییری تو اونجوری می‌ده؟ اگر پس میتونیم بگیم اگر تو سومری هم آخر میاد میتونه اینا ارتباطی با هم داشته باشن اگر در اکدی اومده فل در آخر پس تحت تحصیل این منطقه بوده در صورتی که عربی شما میدونید اومده اول در زبان های سامی اوله پس اگر اکدی اومده آخر پس نشون میده که این تحت تاثیر دیگه بوده بارد. ما از این طریقا میتونیم ثابت بکنیم بودن وجود آریایی در این فلات بله خیلی متشکر از توضیحات جامعه تون و معرفی این آثار پس خیلی هم دست در واقع پجوهش کردن تو ایران خالی نیستش و زمینه برای پژوهش تو این مورد وجود داره معمولا الان بیشتر دانشجای علوم انسانی شما صحبت میکنید از نبود و فقر موضوع برای مثلا پایان نامو و مقاله صحبت میکنم مثلا یه در مورد تاریخ ما کار کردیم فلان موضوع یا در مورد روات به املاء میخوان کار کنن آقا همچه کار شده در مورد این موضوع ولی در زبان شناسی و باستان شناسی ما میبینیم که خیلی در واقع جا هستش والا تحقیق شما حتی به یه روستای دورافتاده مثلا تو لرستان تو آذربایجان تو کردستان برید بر اساس زبان ها و عادت ها و رسومی که اونا هر کدومشون میتونه موضوع یه مقاله و تحقیق و پایان نامه باشه به شرطی که خب دوستان بزرگواران دانشجویان و همبلی به خرج ندن و بیان مثلا کار بکنن در مورد این مسئله ولی متشکرم از حضورتون ام دکتر احسانی در برنامه گذشته شما یه مبحثی رو شروع کردین در مورد یه پژوهشی که در هندوستان شروع شد و یه ایدهی مطرح شد تحتمون آریایی های هندی اون بحثتون خیلی ناقص مون فرماده که بر اساس یه پیشفرضی این مسئله انجام شده که یک مهاجرتی توسط آریایی ها صورت گرفته ادامه فرمایشات شما رو درباره این مسئله میشنمیم بله درود به همه شنونده ها و دوستان گرامی که اینجا هستن من صحبتی که جلسه پیش کردم فکر می کنم به اینجا رسید که وقتی که ما پیش تو ذهنمون باشه درباره یک موضوع یعنی نتیجه رو از قبل گرفته باشیم یعنی در واقع اون کاری که انگلیسی ها در هندوستان راجع به این که به هر حال این گنجینه سانسکریتی که وجود داره نمیتونه کار بومیای هند باشه بعد کار یک گروه مهاجری بوده باشه و خلاص پیشورزی در نظر گرفتن که یک سری اقوام مهاجر که حالا همون آریای های سفید پوست بودن اومدن هند این پیشفرض رو که در نظر گرفتن بعد پژوهش های باستانشناسی و زبانشناسی شناسی که انجام می شد همشون به یاری گرفته می برای اثبات اون فرضیه یعنی نتیجه گرفته شده بود این نتیجهی که گرفته شده بود به خاطر اینکه قاعدتاً نتیجه درستی نیست دانشمندای مختلف توی دنیا فکر می کنم اگر من اشتباه نکنم درباره عددش از همون دو سال پیش تا حالا یه چیزی حدود فکر می کنم 17 تا یا 27 تا خواستگاه برای آریایی ها پیدا کرده دیگه از مغولستان اونده میدونم سیبری و اینا بگیرید شما تا حتی بعضی و گفتن بابل و میان رودان و آلمان و نمیدونم اسکاندیناوی و همه جا خیلی جاها دیگه یعنی هر جایی که خلاصه شده هر جا باشه خلاصه به غیر از ایران و هند و این ورا دیگه این جاها نباشه, این جاها نباشه. جاها هر جایی دیگه شد شد <تصفح> عملا همچین اتفاقی افتاده فرض این بوده که خلاصه مهاجرت صورت گرفته از یک جایی به این منطقه میانی حالا ما باستانشناس ها و زبانشناس داریم که بر اساس ای که از اون سرزمین اصلی تو ذهنشون بوده اومدن داده های باستانشناسی و زبانشناسی رو بررسی کردن. نمونش مثلا یک مکتب باستانشناسی هست مکتب گیمبوتاس، خانم ماریا گیمبوتاس که باستانشناس معروفی بودن و یک مکتب پای گذاری کردن ظاهران در باستانشناسی، این مکتب بر اساس داده های باستانشناسی که داره به این نتیجه میرسه که آریایی ها از قوم خشنی بودن قبایل کوچنده و کوهنشین و جنگجو بودن از منطقه سرد و خشن شمالی می اومدن و از شمال استپ کورکان از اونجا ها اومدن حالا درباره همین آریایی ها ما یک مکتب باستانشناسی دیگه داریم یک باستانشناس انگلیسی داریم کالین رینفراو این اومده به خاطر اینکه ذهنیتش این بوده که آریایی ها از اون استپ شمالی نبودن از آناتولی بودن گفته که نه اینا مردم لطیف بودن و ما دادای نشون میده که کشاورز بودن و اینا کتابی هستش کتاب هندو اروپایی ها بازسازی و آنالیز زبانی از نویسنده گرجستانی توماس گامکرلیتز البته همراه با آقای ایوانوفین سال 95 این کتابو نوشتن اینا چون ذهنیتشون این بوده که آریایی ها باید از مناطق استوایی اومده باشن اومدن میگن که نه ما از نظر زبان شناسی میبینیم که اینا باید مردمی باشن از یک ناحیه گرم حالا یا در خاور نزدیک یا بالاخره یک منطقه گرمی در آسیا ما میتونیم ببینیم که مثلا نظر زبان شناسی اینا مال منطقه هستن که فیل و میمون و میوه‌های استوایی و این چیزا داریم میبینیم توی اسناد زبانیشون کلا میپیچونن که بگن آقا اینجا نبوده دیگه اینجا نتیجه رو از قبل گرفتن چون نتیجه رو از قبل گرفتن دارن دنبال جا میگردن حالا شما وقتی دارین دنبال جای یه جایی میگردین خب اگر شما فکرتون باشه که آریایی از سیبری اومدن میرید داده‌های باستان‌شناسی و زبانشناسیتون رو بر اون اساس آنالیز می کنید اگر فکرتون باشه که نه از آناتولی اومدن میرید بر یه اساس دیگه بررسی می کنید مثلا این آقای نیکولاس چون فکر می‌کنه که آریایی ها از منطقه سرد اومدن یک کتابی داره میگه که خاستگاه حالا من دارم ترجمه میکنم به فارسی نام کتاب رو شاید خیلی خوب در ترجمم ولی حالا خواستگاه زبانی و زبانشناسی اقوام هندو اروپایی کتاب سال 97 نوشته شده اون بر اساس همین داده های زبان شناسی که دو نفر دیگه به این نتیجه می رسن که آریایی‌ها ها باید از یه منطقه گرم اومده باشن این به این نتیجه میرسه که آریایی‌ها ها بعد از منطقه سرد اومده باشن. ببینید من فکر می کنم مشکل همه اینه که آریای ها تو همه مناطق بودن لوممن نودد از یک جای اومده باشن رفته باشن یه جای دیگه تو این منطقه میانی بودن به خاطر همینه که بر اساس همین اسناد باقی مانده از، این افراد که آریایی مینامیمشون الان بر اساس همین اسناد میشه ثابت کرد اینا مال منطقه گرمند میشه ثابت کرد مال منطقه سردن میشه ثابت کرد کشاورزن میشه ثابت کرد کوچ نشینن چون طبع خصوصیات دارن دیگه دارن همشو همه اینا بوده ولی اگر شما نتیجه را گرفته باشین که اینا باید کوچنشین و کوهنشین و مثلا جنگجو و اینا بوده باشن خب میتونید برید توی اسناد بگردید مسائلی که مربوط به اون نتیجه که شما دوست دارید هست رو پیدا کنید. ببینید برای هند چون من جلسات قبل هم همه صحبتمون سر هندیا بود من الان یه مثال میخوام بزنم. یک واژه هست توی وداها واژه هستش اناسه. اناسه رو ما به دو شکل میتونیم این واژه رو ریشه شناسی بکنیم در واقع و ترجمه بکنیم یا میشه گفتش که این واژه تشکیل شده از یک پیشوند ان که منفی سازه و واژه آسه یا میشه این واژه رو گفتش که این واژه تشکیل شده از یک پیشوند اه منفی سازه و واژه ناسه ناسا یعنی دماغ آس همیشه دهان یه مفسری ما داریم تفسیر ریگودار رو انجام داده مفسر مال قرن 14 میلادیه سایان میگن کهان ترین تفسیر ریگودار رو انجام داده خب طبیعتاً این شخص هندی بوده دیگه بل. این واجه عناصر رو ترجمه کرده انسان بیدهان که این واجه صفت اون اقوام در واقع مخالف آریه ها بوده ما دو تا گروه داریم توی ریگودا گروه آریه ها رو داریم و دستویه ها رو داریم اینا با همدیگه می جنگن حالا اتفاقی که افتاده اینه که اروپایی ها به ویژه حالا انگلیسی های اون دوره چون آریه ها رو مردم دماغ سربالا و اینجوری تصور می و بعد گفتن که خب اناسا یعنی بی دماغ چون که دستویه ها و بومیایی بودند که دماغ های پهن و به صورت چسبیده داشتند شبیه مثلا بومیای استرالیا درسته در نتیجه آریه ها اینا رو بهشون گفتن اقوام بی دماغ به خاطر اینکه آریه ها دماغ های سر بالا داشتن نژاد سفید دیگه در نظر بگیرین گیرین اناسا صفتی بوده برای دستویه ها که آدمایی بودند که دماغ پخت و به صورت چسبیده داشتند خب ببینید این با تصور خودش اومده واژر رو ریشه شناسی کرده و گفته یعنی بی‌دماغ و خیلی از این نتیجه گرفتنا یعنی اصلا این واژه نمیدونید قوقا میکنه این واژه دیگه خیلی ثابت میکنه که آریه ها یک نژاد متفاوتی بودن دستویها یک نژاد دیگری بودن با. و آریه ها اومدن با دستویها جنگیدن در صورتی که اصلا واژه اشتباه ریشه یابی شده برای اینکه خود این آقای ساینه که هندی بوده و حدود 600 700 سال پیش ریگ تفسیر کرده گفته این واژه یعنی بیدهان و چرا بیدهان حالا دلایل خودشو داره دلایل اصلا فرهنگی و اسطوره‌ای داره اینجوری نبوده که واقعا یک قومی بودن دهان نداشتن میخوام اینو بگم ببینید از همه اینا من میخوام به اینجا برسم که این قضیه که واقعا شما چه فکری بکنید وقتی یه انگلیسی نشسته فکر میکنه که یک آریایی باید یک سفیدپوست دماغ سر بالا باشه و یک بومی هند باید یک آدم شبیه بومی استرالیایی باشه میشینه واژه رو اینجوری تعبیر میکنه بله دیگه بر اساس ذهنیات قبلی خودش اون منابعی که در اختیار داره اون در واقع متن قدیمی که در اختیار اون واژه قدیمی رو بر اساس اون پیشفرض خودش تفسیر میکنه و بعد مشکلاتی مشکلات پیش میاد اینجوری و حالا چقدر باید کوشش بشه که این ذهنیت این که این آریه ها و دستویه ها دو تا نژاد متفاوت نبودن بلکه دو تا گروه بودند دو تا گروه, گروه دو که فرهنگ جداگانه داشتن اصلا مشکلشون خود دانشمندان هندی برخیشون البته اعتقادشون بر اینه که اینا اصلا داشتن نبرد های بصطلاح نبردهای بین فرقه ای با هم دیگه میکردن. اینا نظر نژاد با هم دیگه مسئله ای نداشتن. ای بله. نبرد بین فرقه ای بوده بین دو تا گروه، دو تا فرقه متفاو. دقیقا بله. خیلی متشکرم میخواهم دکتر و با توضیحات که شما فرمودین اصلا کلا مشخص هستش که بیطرفی در چنین مسائل واقعا خیلی هم سخت هست یعنی ما اصلا نمیتونیم کسی رو پیدا کنیم که 100 درصد بیطرفانه بیاد نگاه بکنه کلا تو علوم انسانی بیطرفی محس امکان نداره در مسائل تاریخی چون شخصی که میاد تفسیر میکنه و میخواد به عنوان مفسر منابع تاریخی عمل بکنه قطعا از یک پیش‌فرضی برخورد داره از یک قومی حالا نژاد که حالا خود ما قبلا عرض کردیم که به چیزی به اسم نژاد اعتقادی نداریم بالاخره از یک کشوری از یک قومی از یک زبانی، از یک فرهنگی از یک پیشنی تاریخی برخوردار هست و دوست داره در پس ذهنش این واژه رو طوری تعریف بکنه که به فرهنگ و در واقع پیشفرزهای های کمک بکنه نه بی به پیشور که قبل عنوان فکتی حقیقت فرض کرده. فکت و حقیقت بینی هم در اینمان کاملا نسبی هستش ما نمیتونیم خیلی این مسئله رو به سمت یک حقیقت محض سوق بدیم حقیقت محض پیدا کردن هم کاملا بیخود هست شما مثلا در مورد یک واقع تاریخی سی ساله پیشم نمیدونید نظریهصد درصدی بده که صد ساده است که افتاده با این جزئیات و با این فکت ها در مورد این مسئله حالا واژه آریایی شاید خیلی از زبان بنده و یا بقیه کارشناسان محترم برنامه شنیده میشه خود بنده نظر خودمو میخوام بگم حالا هر کدوم از دوستان نوبت در این برنامه برنامه های دیگه برنامه های آینده رسید بگم نظر خود بنده بنده نظر خودمو میگم منظور بنده خود شخص بنده اگر کلمه آریایی رو میشنوید به هیچ وجه منظور به عنوان یک نژاد خاص که دارای یک کاتگوری ژنتیکی و جنسی خاصی هست نیست یه بخشی از انسان هایی هستند که دارای یک فرهنگ خاصی بودند عمدتا سفید هستند و در میان تمام جوامع فرهنگشون زبانشون و تاریخشون مشترک هستش و به هیچ وجه به معنای یک نژاد خاص نیست به عنوان یک جداسازی یک نژاد جمعیتی خاصی منظور خود بنده حداقل نیست حالا هر وقتم رسید به نوبت دوستان نظر خودشون رو بگن و اینجا نظر شخصی خود بنده است تو این برنامه حالا فکر نکنم نوبت به جناب آقای ایران مهری گرامی برسه یک یا دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم در این برنامه خب در خدمت دو نفر بودیم جناب آقای کریم و خانم دکتر احسانی صحبتهای خیلی ارزشمند و مفیدی رو داشتن و بیشتر حالت جهدهی به پژوهشی که ما داریم هستش جناب آقای کریمی در مورد منابعی که برای زبانشناسی در ایران هستش فرمودن و همین توصیه ایشون رو خود من هم تکرار میکنم زبانشناسی علم خیلی سخت و حساسی هست هرگز با سرچ کردن در اینترنت و خوندن چند تا مقاله از مجلات و جورنال ها نمیشه به این علم پی بورد گرچه باید رسیدن به حالت دانشگاهی این علم هم برای هر کسی آسون نیست ولی کسایی که میخوان در این مورد مطالعه کنن حتما باید عمیق مطالعه کنن یه سری منابعی هست که حتما باید بخونن آشنایی داشته باشن همونطور که کسی که مثلا میخواد علم سیاست رو بخونه حتما باید یه سری مباهانی یه سری تاریخ یه سری فلسفه علم سیاست رو باید بدونه این یه امری کاملا ساده است یا مثلا کسی که میخواد استماتی از منابع فقهی بکنه یه سری مقدمات رو حتما باید بخونه و اینکه مثلا یه نفر میاد میگه که از نظری بر اساس دانش کَم خودش می‌کنه. به نظر من باید در این دنیای امروز، چه دنیای امروز واقعاً سخت هستش مسائل علمی توش، سخن گفتن. تو دنیای امروز شما یک صحبتی رو بکنید، بعد ما به هزای اون منبعی رو نداشته باشید و دلیل محکم علمی مستند علمی نداشته باشید، چران واقعاً حالا بذارید خیلی راحت و خودمونی میگه چران میزنن دو دهن آدم یه حتی خودش که هیچ ده نص بعدش اصلا تونه حرف بزنه. لذا وقتی که می‌خوام در این اظهار نظر بکنیم، باید خیلی اساسی و براساس اساس محکمات و مستندات علمی باشه یعنی یه طوری باشه که فونداسیون اون سخن فونداسیون اون ادعا کاملا قوی باشه و با زلزله هشتشتری که 80 ریشتری هم فرو نریزه صحبتهای خانم دکتر احسانی هم شنیدیم که ادامه صحبتاشون از برنامه گذشته بود و جان کلامی ایشون این بود که مفصلینی که میان محتلهای تاریخی رو تفسیر میکنن برساس پیشفرزهای خودشون تفسیر کردن و تا به حال واجه ها و محتلهای قدیمی که از در واقع متون کهن آریایی وجود داشته تا به حال دقیق و غیر میترفانه مورد کنکاش علمی قرار نگرفته. شنبا لگانیگرامی خیلی متشکر که همراه ما بودین توی برنامه و تحمل کردید سخنان ما رو شما رو تا آغاز قسمت هفت به خداوند بزرگ و تالم خدا یاد رو اگه